تعریف اول هیبنوتیزم، هیبنوتیزم علم از قوی و ارتباط قوی با دیگران یا با خودتونه. ببینید چه تعریفی داره خدمتون ارائه میشه. من تعریف مختلفی رو در به هیبنوتیزم مطرح میکنم. این تعریف مختلف در اصل از نگاه های مختلف دارن به هیبنوتیزم نگاه میکنن، می به علم هیبنوتیزم و، درک بالاتری به شما میدن از اینکه هیپنوتیزم چیه و چه فایده ای داره و چه عملی میتونه برای شما انجام بده هر جایی از تاریخ ارتباط قوی وجود داشت حال یه رهبر بزرگی بوده یه فردی بوده که خیلی اثرگذار بوده و کلیا تاثیر گرفتن ازش اون آدم حالا به صورت خداگاه ذاتی یا به هر دلیلی به خاطر رسن به سطوح بالاتر هوش یا هر چیزی یه جورایی علم هیپنوتیزم رو یاد گرفته هپنوتیزمی رفتار کرده. بنابراین اگه شما میخواید ارتباط موثر با دیگران یا با خودتون داشته باشید. علم هیپنتیززم علمیه که برای شما موثره. ببینید ما وقتی که درباره خودشناسی شناسی و یا بحثایی که حال دوره دورای متافزیک با همین دوره داره پیش میره، توی کلاس متافیزیک که میتونید توی بخش کلاس های دامی مشاهده کنید در وبسایت. ما اونجا داریم میگییم که انسان ذاتا یه وجودی خیلی بزرگتر از اون چیزی که الان شد، خودتون متصورید شما قدرت عجیب غریبی دارید که توی عمق وجودتونه و هپنتیز به شما کمک میکنه که به اون بخش ها دسترسی پیدا کنید و بعد اون بخش ها میتونن وقتی بهش دسترسی پیدا کنید وقتی بتونید با اون بخش ارتباط قوی و مؤثر داشته باشید که ابزارش هپنتیزم شما میتونید یه چیزهایی رو رقم بزنید توی زندگیتون شما میتونید یه خواسته ای رو جذب کنید شما میتونید یه اتفاقی رو باعث بشید توی زننیتون یه فرد بیرونی رو وارد زندگی تون برای رابطه رابطش یا برای هر موضوع دیگه ای و این قدرت یپنتیزم خیلی از افراد مریض میشن نمیتونن خودشون رو درمان کنن و هیپنوتیز به شما کمک میکنه که حتی با خود یپناتیز بتونید بیماری های سر سخت رو جورایی درمان کنید بتونید دسترسی پیدا کنید به بخش اممیقتر وجودتون به بخش اممیقتر ناخودگاهتون که اون هم دیگه قدرتیه که به منشه هستی به کل کائنات وصله و بعد اثر بذارید روی خودتون بنابراین ارتباط قوی با خودتون یا دیگران چیزی که شما بهش نیاز دارید توی تجارت توی درمان بیماری توی نمیدونم رابطه عشقی توی هر چیزی که فکرش کنید و این چیزی که با علم هیبنوتیز محقق میشه